بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمدك ربنا ونستعينك ونستغفرك ونتوب إليك سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك انت كما أثنيت على نفسك إليك وإلا لا تشد الركائب وفيك وإلا فالمؤمل خائب ومنك وإلا لا تنال الرغائب وعنك وإلا فالمحدث كاذب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمَ دُرُودِ شريف بخاني صلى الله توفیقی از جانب الله تعالی حاصل شد که در منبر درسها و دردها بگویی بشنوی و بشنویم و به صورت طبیعی دنیا ما هم او از درس و درد شده، درسهای زیاد و درد های جانک را طیر قابل علاج. ما در این جهان با خود و جامعه ای روبرو هستیم که، اندیشه اسلامی را کنار گذاشته و تفکرات دینی را مسموم می‌داند و زهر را برای خودش دارو و دارو را زهر می‌فهمد ما در دنیای قساوت‌ها در دنیای ستمها در دنیای بی ادالتی، در دنیای بی محبتی در دنیای تخت و تاز و در دنیای رقابت منفی قرار گرفتیم جهانی شدن طبعات زیادی و صدمات زیادی به انسانیت وارد کرد نفس را گستاختر و جسورتر کرد و شیاطین را قویتر در این دنیا امیدها و ناامیدیهای زیادیست در وهله امید قرار می گیرد یا در مرحله ناامیدی ولی عموماً جمیع افراد بشر و جامعه انسانی الان ناامیدن و دلها شکسته است اونهایی که احساس بهتری دارن اونهایی که از عقل کاملتری برخوردارند، دلشان شکسته و امید خود را از دست دادند. بسیاری هم که گمان می کنن امیدوارن تا به جایی ورسن فصلشان عوض شود ناامیدترین افراد جامعه یعنی به تعبیری، از آخرت ناامیدم و به دنیا و آینده دنیا امیدوارند. بلی با امید به دنیای بهتر زندگی می کنن آخرت را اصلا گمانش را هم نمی کنن. هیچ وقت از خودمان سوال کردیم که چرا این قدر در دنیا بیمهری و بیادالتی هست بیمهری و بیادالتی در داخل خانواده ها مانند آفتاب، روشن و حویده هست بی ادالتی نسبت به همسایه، نسبت به قوم و خیش بی ادالتی نسبت به فروشنده، نسبت به مشتری بی ادالتی در سطح جامعه بشری، نسبت به رعیت و یا نسبت به راعی دنیا دنیای ظلم شده و زون به عنوان ایدئولوژی بشر قرار گرفت عقیده بشر این است که من تا می توانم بچاپم و ببرم و جیب بریزم و تصاحب کنم خیر و شرش را کنار گذاشته فقط امید ناامیدش امیدش به این است که فردای بهتری برای خودش به وجود آورد فردایی که برای او چیزی جز حسرت و ندامت نخواهد داشت و او به این هم فکر نمی کند. در این دنیایی که ما زندگی میکنیم، محبت را فراموش کردیم و به بیمهری و کینه توزیمی اندیشیم در این دنیایی که بشر زندگی می کند ادالت را کن کنار گذاشته و رها کرده و به ظلم توجه می کند. نمی من ظالمم کارش را می کند بی ادالتی می کند ظلم می کند سیدن علی کرم الله وجهه و رضی الله عنه میفرمایند: فرماید و سنفان مردم دو گروه هن. بزرگان وقتی نصیحت می تنها حزب خود را نصیحت نمی یک گرایش خاصی را نصیحت نمی کردن. چون که بزرگ جامعه انسانی بودن کما که خود را بزرگ هم نمی دیدن صحبتهایشان مانند کلام رب العالمین برای همه افراد بشر بود بشری که عرض کردم سطح اقلانیتش پایین آمده و تنها شعار می دهد در داخل منزل شعار می دهد پیش غریبه شعار می دهد پیش دوست و آشنا شعار می دهد شعر این میداد که من مسلمانم از من خدا ترستر در کجا پیدا میشود زاهد منم ولو به فرمایشات رب العالمین کمتر نگاه کرده قرآن کمتر تلاوت کرده و یا اصلا تلاوت قرآن را کی میشنود قرآن را زمانی میشنود که هیچ نوری ندارد هیچ معنویتی ندارد در تعذیه ها قرآن را میشنود از صدا و سیما قرآنی می شنود قرآن را اگر از شبکه محوری بشنود در داخل این تشکول فاسد گاهی صدای قرآن را هم می شنود به صفحه قرآن با اخلاص نگاه کرده با اخلاص تلاوتش کرده کی سر جلسه قرآن نشسته با قلب شکسته و با قلب متوازه که این ترازوی محکمن هست من بنشینم و خود را اصلاح کنم که این کار را کرده بزرگان چی نصیحت می کنن می مردم شما دو دسته اید اناس و سنفان مردم دو گروه اما اخ و لکف این را باید روی سردره وزارتخانه های دنیا بنویسند. بر روی سردره دفتر ریاست های جمهور و پادشاهان دنیا بنویسند این فرمایش حضرت علی را بر سردره محاکم شرعی و قانونی بنویسند بر سردر خانه ها باید این نوشته شود اینجا باید بر سردر مساجد بنویسند تا مردم همه ببینند که نسبت به هم باید چطور باشن اما اخو لک فی الدین مردم دو گروهند یا برادر دینی و اعتقادی تو هستند مسلمانان مسلمانان مسلمان مردم یا مسلمانان برادر دینی تو هستند ترا چی شده برادر تورا چه شده که برادرانت را فراموش کردی؟ کسی را برادر خود نمی دای؟ تارا چه شده که طرف را طعاه شکار می بینی؟ تارا چه شده که طرف را سیبل تیراندازی می بینی که به سمت کنی؟ تا چه شده که به دنبال این هستی که روزی این برادر را در ته چاه ببینی؟ تو جزء مردم نیستی مردم یا برادر دینی تو هستند او نظیر لکفل خلق یا شویه تو هستند در آفرینش یعنی مثل تو انسانن و انسان حقوقی دارد حق دارد که بدون تپش قلب نفس بکشد بدون سردرد نفس بکشد تو نباید باعث درد سرش باشی یا باعث نگرانیش کافر باشد این فرمایش علی کرمال منشور وحدت در سطح نجامعی اسلامی بین شیعه و سنی بین کل افراد بشر مردم یا برادر دینی تو هستن و یا شبیه تو در آفرینش هر حقی که برای تو تعریب شده برای زندگی برای او هم تعریب شده این یک جمله کوتاه هست ولی ساعتها فکر می خواهد که بنده و شما بفهمیم که با مردم چطور برخورد کنیم مردم را برادر خود بدانیم و از خود بهتر و به فرموده شیخ سعدی برادر هم که دوست به برادر هم بهتر است که دوست باشد یک گای اوقت برادران هم با هم دیگر برزخی می‌شوند و به هم می‌تازند. شخصی آمد خدمت حضرت محمد ابن علی امام باقر رحمت الله علیه، من از خراسان با پای پیاده آمدن تا شما را ملاقات کنم مردم آن زمان برای اولیاء خیلی ارزش قائل بودن امروز هم هستن افرادی که شاید علاقه داشته باشند که به ملاقات اولیاء برونن نه برای مسادره اولیا بلکه به خاطر کسب فیض از اولیه که انسان ها هم باز در زمینه اولیه خدا هم دو گروه هن. یک عدی میخوان از اولیا استفاده مادی و انصری بکنن برای خود در اجتماع ولی یک عدی میخوان از اولیا دین یاد بگیرن با اونا دوست شون تا اینکه دوست خدا شون کفشهای خودش را از پادر آورد پاهایش تاول زده بود گفت که یا امام من از خراسان با پای پیاده آمدم به خدمت شما و چیزی که من را از اونجا بلند کرده که به ملاقات شما بیایم فقط محبت و دوستی با شما است. من فقط شما را برای خودتان دوست دارم چه زیبا می چه جالب و چه نغز حضرت امام محمد باقر به این مرید خودشان میفرمایند که حل الدین الا الحب آیا دین غیر از دوستی است دین یعنی دوستی دین یعنی دوست داشتن یعنی رسول اکرم صلی الله علیه و اسلام میفرمایند المرء مع من احب هر انسانی با کسی همراه هست در دنیا و آخرت که او را دوست دارد شما کسانی را که دوست دارید با آنها هستید شما کلاهبردار بردرها را دوست دارید در دنیا یا انسانهای ضعیف و مسته از افراد کیا را دوست دارید شما دل شما برای کی می سوزد عاشق دیداره کی هستید شما با اونها هش میشوید؟ چرا به کی علاقه من دید؟ عاشق کی هستی؟ تو با او عشق میشه بود. با او خواهید بود. هر شخصی با کسی است که او را دوست دارد. و در قرآن هم می‌خوانید که خداوند مطال فرمودن که اگر شما واقعاً خدا را دوست دارید شما از من محمد پیروی کنید تا خدا شما را دوست بدارد. شما محب خدا هستید ولی محبوب خدا نیستید. شما می‌گویید من خدا را دوست دارم ولی خدا شما را دوست ندارد. ما چطور بفهمیم که خدا ما را دوست دارد؟ ببینیم چند اندازه برای خدا ارزش قائلیم، چند اندازه توجه میکنیم به اوامر الهی، به نواهی الهی همون اندازه در نزد خدا عرضش مندیم همون اندازه برای خدا مهمیم و وجود ما مایه رحمت الهی در جامعه خواهد بود نه مایه رنج و عذاب الهی برای مردم مایه درد سر برای مردم ما این نگرانی برای مردم مردم آرزوی مرگ ما را بکنن آروزی نابودی ما را بکنن چرا؟ به خاطر اینکه که ما انسانیت و اسلامیت را برای خود تعریف کردیم و از اون تعریفی که خدا برای انسانیت کرده و برای مسلمانی کرده بلکل فاصله گرفتیم زیاد فاصله گرفتیم خداوند متعال دستور می دهد. دستور می در قرآن که شما همربه ماروف و نهی از منکر کنید برای چی برای اینکه ارتباط در بین شما برقرار شود شما به فکر رشد هم دیگر باشید و به فکر این باشید که نواقصات و عیوب هم دیگر را دور کنید خیرخواه هم دیگر باشید خداوند متعال در قرآن دستور میدهد از من اطاعت کنید از الله اطاعت کنید از رسول الله اطاعت کنید جای دیگر هم می‌فرماید ولا و لا تقیعو امر المصرفین از های متجاوز از انسان های ظالم از انسان های فاسد اطاعت نکنید. الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون کسانی که در روی زمین خرابکاری کنند و اصلاح کنند از اونها اطاعت نکنید. شما به انبیا و اولیاء توجه کنید. شما به دوستان خدا توجه کنید از دشمنان خدا بپرهیزید. دوری کنید فاصله ایجاد کنید بین خود با اونها. شما در این دنیا سعی کنید حق دیگران را حق خود بدانید به یک دیگر ظلم نکنید به یک دیگر حسادت نکنید روی معامله هم دیگر معامله نکنید روی خستگاری کسی خاستگاری نکنید داماد و عروس را فرزندان خود بدانید با اونها رقابت نکنید با اونها کشمکش نکنید احترام پدران خود را داشته باشید احترام مادر را داشته باشید احترام پدر خانوم را داشته باشید احترام مادر خانم احترام مادر شوهر پدر شوهر اینها را داشته باشید دین همهش نکات مثبت است نمایشی در انگلستان برگزار شد این نمایشگاه از طرف یکی از کشورهای اسلامی با نام آشنایی با اسلام نمایشگاهی ترتیب داده شد در این نمایشگاه یکی از دعوتگاران بزرگ اسلامی هم شرکت داشته ایشان این فرماین که من اتفاقا با یکی از چهره های سرشناس اروپایی از اسکاتلند برخوردی داشتم در داخل این نمایشگاه و با هم گفتگوی مختصری داشتیم من به او گفتم که دوست دارید در مورد اسلام من بیشتر به شما مطلب برسانم و با هم دیگر در دربا اسلام داشته باشیم او گفت که نه من هیچ علاقی به این مسئله ندارم و سالیان سال با مسلمان ها در کشورهای عربی و اسلامی زندگی کردم همه اسلام را می و هم مسلمان ها را شناختم علاقه ای ندارم که گفتگوی سادهی در باب اسلام داشته باشم خودم به اندازه کافی در مورد اسلام تحقیق کردم مسلمان ها را می شنستم. گفت که خب پس شما اینجا چکار می کنید؟ گفت بله من اون چیزی که در باب اسلام است همه را فهمیدم شناختم اسلام است که به معنای خیلی ساده پرستش پروردگار را به ما تعلیم میدهد پروردگار همه قبول دارم به ما میفهماند که چطور با دیگران تعامل داشته باشیم چطور با دیگران رفتار داشته باشیم اخلاق ما و دیگران چطور باشد کلیه صفات اسلامی را من میدانم بل متاسفانه با مسلمانهایی زندگی کردم خوب توجه کنید با مسلمانهایی زندگی کردم که دروغ میگوین دروغ میگوین این واژه دروغ با بهوصیس دروغ یعنی این نیست که شما به فرزند خودتان خیلی آبودم که به ما دروغ گفتن خیلی آبودم که به ما دروغ گفتن خیلی ها بودن که بر سر ما کلاه گذاشتن درفش را هم خاندن درس دروغگویی را خاندن فهمیدن چطور دروغ بگویند تا رسوان شوند مسلمان ها دروغ میگویند دوشنام میدهند دزدی میکنند ارزش وقت را نمیدانند آنارشیست من به دنبال هر جمرد رعایت حقوق قانونی هیچ حکومتی را نمی‌کنن. فرصت بیتاب بکنن قانون را دور می مسلمان ها به حقوق همدیگر احترام نمی‌گذارن. همسایگان را اقوام و خیشان خود را مانند دشمنان نگاه می‌کنن، با آنها رقابت می‌کنن. و این چیزی است که من از مسلمان ها دیدم. او خب شما به قرآن توجه کنید به احادیث رسول الله توجه کنید شما به اون توجه کنید و مطلب درست اسلام را بفهمید او گفت که ما یعنی منظور ما امام نامسلمان ها ما اروپایی ها امریکای ها ما کفار یعنی ما علاقه داریم که به جایی که کتابی در مورد یک مکتب در مورد یک مذهب در مورد یک ایدئولوژی مطالعه کنیم ما علاقه من دیم که یک سیستم کاربردی یک سیستم عملی از اسلام ببینیم. اون وقت ما به طرز شکرانگیزی ما واله شما می شویم، ما عاشق شما می شویم و گرایش به سمت شما پیدا ولی تا زمانی که شما اینطور باشید ما مسلمان نمی شویم. ذاابرو خود می ترسیم. این نتیجه چکیده اسلام و مسلمانی که در جامعه است. او در جواب گفت که مذرد میخوام اگر خاطر شما را مکدر کردن ولی ما شما مسلمان ها را از خودتان بهتر میشنستیم چون فکر کردید کسی شما را نمیشنست ما شما را خوب شناختیم ولی در جواب گفت که اگر روزی برسد که مسلمان ها به قرآن برگردن این این پجوهشکر اسکاتلندی نمیگیم او بکر صدیق یا امام ابو حنیفه یا فلان شخصیت دینی و اسلامی و علمی نه این پجوهشکر اسکاتلندی میگوید زمانی که شما به قرآن برگردید دنیا گروه گروه مسلمان میشود اصلا نیازی به گفتن نیست این همه هزینه نکنید نماشگاه فلان با آرم آشنایی با اسلام ترتیب ندید مسلمان باشید مسلمان باشید فرزند شما لامظهر نمی شود. مسلمان باشید دیردستان شما به شما توهین نخواهند کرد. مسلمان باشید فرزند شما حرمت شما را نخواهد شکست. مسلمان باشید عروس و داماد احترام شما را حفظ خواهد کرد. مسلمان باشید شاگردان شما به شما احترام خواهند گذاشت. مسلمان باشید مردم شما را پیدا میکن. به ارادت به شما پیدا خواهند کرد. شما را ویل نمی کنن. ولی اگر مسلمان نباشید مردم همین که شما را نبینند راحت پرند. فلانی مرد نفس راحتی می کشن. فلانی از کار بر کنار شد نفس راحتی می کشن. فلانی جایگاهش را از دست داد نفس راحتی می کشن. این مسلمان ها بین امید و ناامیدی در دنیا زندگی میکنن و ما باید برای این مسلمان ها دعا کنیم برای این مسلمان ها باید دل بسوزانیم که کسی را ندارن و جای وقت اون امیدشان هم به ناامیدی تبدیل میشه مسلمان ها امیدشان به کی است؟ به جای که امیدشان به همسایگانشان باشد به همسایگان اسلامی، کشورهای اسلامی الگویشم در جامعه مسلمانی باشد به دنبال الگوهای غربی، به دنبال الگوهای شرقی، به دنبال قاتلین خود هستند، به دنبال نابودگران خود هستند، به دنبال اونها میچرخند. از آمریکا و کی یاد می کنند و کسانی که صفات آمریکا را دارند. بلوک شرق و غرب شده به عنوان پیشوای اخلاقی، پیشوای رفتاری جامعه اسلامی. مدرک زیاد شده ولی دانش و درک کم شده متاسف.ثروت زیاد شده ولی گذشت کم شده. خان ها بزرگ شده ولی خانواده ها کوچک شدن. ما همه چیز داریم ولی هیچی نداریم آسایش نداریم افوردهین نگرانیم شکسته ایم به خاطرنی که کسی دست ما را نمیگیرد. نازو نوازش ما نمی کند، انسان عبیدال احسان هست، نوتر احسان هست کسی نیست که با ما نیکی کند، کسی نیست که به خاطر خدا گذشت کند، به خاطر انسانیت بگذارد مطمئن نظر ما شده، سبک و رفتار غربی ها، سبک و رفتار یهودیت، مسیحیت بی نمازی ها عبادت هایی که ترک می شود اخلاقی که از بین رفته و اون گنب به معنای کلان به معنای خردش در جامعه هر کس که باشد وقتی که گفته می شود مرگ بر آمریکا یعنی چی یعنی مرگ بر ظالم وقتی گفته می شود مرگ بر اسرائیل یعنی چی یعنی الموت لزالمین خدا ظالیم را بکشد نابود کند وقتی که ما اضافه وزن گرفتیم چاق شدیم و فقرا در دنیا نان شب نداشتن بخورن این یعنی چی؟ این یعنی اینکه که ما به دنبال ظالمین حرکت میکنیم از ظالم داریم خط میگیریم و تنها شعارش را میدهیم و دعواش را داریم و دعایش را میکنیم بعضی ها نخواستن اصلا ظالمی را بشناسن به همین خاطر ظالم شدن چرا ظلم میکنن؟ چرا گناه میکنن؟ چرا دروغ میگوین؟ چرا حق کشی میکنن؟ علتش چی است؟ علتش این است که به خدا امید ندارن به آخرت امیدوار نیستن به این خاطر است چرا توبه نمی کنن به خاطری که امیدوار رحمت الهی نیستن؟ فقط امیدوار این است که از سیستم خود از های رفتاری خود چطور مایه بگیرن؟ نه به دنبال او هستند؟ شخصی آمده بود پیشه یکی از علمای بزرگ بلوشستان حضرت مولانا عبدالله سربازی رحمت اللہ علی پدر حضرت مولانا عبدالعزیز رحمت الله علی بلی من جایی رفتم برای دادرسی مال تقریبا شاید داقل سی چهر سال پیش بوده این مسئله شاید بیشتر بلی حق مال من بوده حق را به این دادن حق را به این دادن و به هر من توجه نگدن قضاوت شما را کی کرده کی قضاوت شما را گوه فلانی فلانی قضاوت من را کرده حضرت مولانا دست این کسی که لحش حکم صادر شده بود دستش را محکم گرفتن علماء باعدم اینطور باشه دست کسانی که فکر میکنن حق با اونهاست بلی حق با اونها نیست حق با کسی دیگه است. دستش را محکم گرفتم حضرت مولانا می به گفتم فلانی به خدا قسم بخور که این زمین مال تو است. قسم بخور به خدا قسم بخور گو مولانا نه زمین مال من نیست زمین مال من نیست گو کی غذابت تو را کرده گو فلان حال منظور از ملا خیلی ها میتوانن مله باشن قاضی باشن دادرسی کنن حق را نه حق کنن گو بله من با اون مله تماس گرفتم که مله خود را به چند فروختی گو به یک حلب روغن من به یک حلب روغن خود را فروختم. اونم اگر تو می‌خواستی خود رو بفروشی قیمت تو بیشتر از این بود. بیشاره. خود را به بیشتر میفروختی به یک حلب روغن تو قضاوت را باطل کردی، عدالت را زیر سوال بردی. این واضحه ماست. آمریکایی که منظور از آمریکار به سیاسی نیست. فرهنگ سرماستم در دنیاست به بهانه مبارزه آی کسانی که دوست دارید مانند ها روسی برگزار کنید خدمت سوری برگزار کنید مانند آمریکایی ها راه بروید مانند آمریکایی ها در داخل و خارج از کشور برهنمگی سیاسی و اخلاقی داشته باجه توجه کنید برهنمگی سیاسی و اخلاقی آمریکا را ببینید خیلی هم اسلام آمریکا هستند قدرتی هم ندارن زوری هم ندارن ولی آمریکا صفتاً بهانه مبارزه با القاعده با همکاری فرانسه علیهم لعائن الله المتتابعه تا يوم القیام. در این روز مبارک لعنت خدا بر ظالم و در رأسش ام آمریکا و دولت های غربی که تشنه خون مسلمان ها هستند به بسیار زرنگ هم به بهانه مبارزه با القاعده وارد کشور مالی شدند به ایده زیادی از مسلمانها را قتل عام کردند و شما را نشنیدید مانند ما امریکایی ها زندگی نکنید برادران و خواهران. حاکم مسلمان افریقای مرکزی را مجبور به استعفا کردن مجبور به استعفا کردن و بعد از استعفایش به شبه نظامیان مسیحی در داخل افریقای مرکزی اجازه دادن هر بلایی میخواید سر زن و مرد مسلمان ها در داخل کوچه و بازار در دیا آزادی در کشور نیجریه حاکم نیجریه را پادشاهی نیجریه را رئیس امور هر کسی که کس است تحت فشار قرار دادن گفتم به شمال نیجریه حمله می کنی و رسته های مسلمان ها را ویران می کنی کسی دم نزد مبارزه با تروریسم نبود به بحانه مبارزه با بک حرام این جماعت فاسد ظالم اسلام گرار ها را قتل هم کردن به زنان مسلمان ها حمله کردن و بچه ها را زنده زنده در داخل کوچه و خیابان سوزاندن و گوشتشان را خوردن فیلمبرداری کردند. از زمانی که دولت کثیف میانمار با با اون خوک دلایلما رهبر مذایان جهان تا حالا 20 هزار مسلمان اهل سنگت میانماری را قتل عام کردند. امریکا تحریم های خود را از روی میانمار وردشته. کی چی گفت کسی دم نزد؟ در کشور مظلوم سوریه و عراق تا همین الان نیمی از حدودان نیمی از ملت سوریه آورن. از 24 میلیون جمعیت سوریه الان حدود 12 میلیون انسان در داخل کشورشان آورن. ما قدر چی را بدانیم؟ قدر ادالت را بدانیم و ظالمین را بشناسیم. چهار هزار حداقل چهار هزار جسد در داخل سوریه شناخته نشده دیمالکی است. چهار ده هزار بالغ بر چارده هزار کودک قتل عام شدند. بالغ بر سیصد هزار مظلوم از بین رفتن. در داخل کشور مظلوم عراق در داخل مساجد چه توانی افتاد؟ با مساجد چکار می کنم؟ مسجدی را میگیرن مانند بالا نسبت شما بوزینه و خیمزیر از روی مهراب بالا میروند بر روی منبرش می نشینند. چی شده؟ به خاطر چی است؟ نه به خاطر این است که مسلمان دشمنی دشمن تر از مسلمان ندارد. و از اون طرف قضیه خودشان خودشان تبهش را می آورند. را مدیریت میکنن، از اون طرف مسلمان ها تا سالیان سال این طرح تک سینگر در داخل کشورهای اسلامی خواهد بود و تیری هم به سمت یهود و نصارا نخواهد شد چرا کونا به ما یاد دادن که مسلمان ها دشمن تو شیعه است دشمن تو سنی است این بمبی که در داخل حسینیه منفجر شد سنی ها این کار را کردند و این بمبی که در داخل این مسجد منفجر شد این کار را کار شیعه ها بود بکش شیعه را سنی را بکش که دشمر تو این شیعه و سنی یهودیان آرام باشی که تا صد سال دیگر شاید فشنگی سمت شما هدف گیری نشود مسلمان ها خود را میخورند خود را میکشند و خود را نابود خواهند کرد بحث بسیار طویل عریض هست حضرت بخام از که وقت به درازا کشیده شد مطلب بسیار افسارده و جانکاه هست ولی هدف از بیان این مطالبی بس برادران آمریکایی زندگی نکنید انگلیسی زندگی نکنید اینا دشمنان ما هستند والله لازم این سیاسی نیست این سیاست ما نیست این ایدئولوژی ماست که دوست ما شیعه است دوست ماسون نیست است مگر اینکه انگلیسی باشد یا آمریکایی اون وقت اون خود آمریکا و انگلیسی است مسلمان کی است المسلم و للمسلم کلیده این تغسل و اخداهم الاخره مسلمان برای مسلمان مانند دوتا دست است که این دوتا دست هم دیگر را می شوین قط زندگی هم را نابود نمی کنن. تلاش برای واسپا کردن هم دیگر ندارن تلاش برای این دارن که دست هم دیگر را بگیرن اگر شما برادران عزیز خواهران محترم در طول شبانه روز دو وعده قزایی دارید از نه نفر دیگر در دنیا ورز شما بهتر است از هر شش نفر از هر شش نفر در دنیا یک نفر گرسنه نمی‌خوابد قدر نعمت های الهی را بدانید با فی انفوس کم افعلات و, و حضرت قتاده می من تفکر فی ها ذهل آیا علم انما لیند مفاصله للعباده کسی که واقعا بینای فکر کند میداند که مفاصلش مفاصلش برای عبادت نرم شده نه برای کارهای دیگر عبادت کنیم مسلمان باشیم انسان باشیم به با انجام که در خدمت نماهیده محترمه خودمان هم هستیم درخواستی از ایشان هم ما داریم درخواستی که از ایشان داریم این است که بیشتر تلاش کردند ولی ما خواسته آجزانه ما جناب آقای نگهبان این است اولا ما از خدا می‌خواهیم بعد از مسئول می‌خواهیم از فرماندار محترم از نماینده محترم دست ما که به رئیس جمهور نمی‌رسند به فکر ما هستند الحمدلله می‌خواهیم که یک خورده بیشتر به فکر فقری که در جامعه ما هست باشه و من تعهد که به عنوان یک طلبه ضعیف خدمت جناب آقای نا ارائه را می کنم خدمت فرماندار محترم ارائه می کنم این است که اگر شما هیچ کار نمیتوانید برای این ملت بکنید یا به این زودی نمیشود یا اگر شده پارسای تمامی میخواهد هزینه میخواهد لطف کنید من این را به عنوان ادب و احترام به حضرت عالی می گویم با فرماندار محترم اگر شده یک سال یا شش ماه یا حداقل یک ماه از حقوق حضرت عالی بگذارید برای فقرا این ملتار. برای این فقرهایی که شما اگر دیدید یا ندیدید، شنیدید یا نشنیدید، بعد از ساعت هشت شب در همین هوای سر در داخل سطل زباله به دنبال تکی نان میدارد. ما گرخاب نداریم در داخل خواب. ولی شاید اگر همینطور دست دست بکنیم علمای محترم، مسئولین محترم سیاسی ما، ثروتمندان ما اگر همینطور بیخیر باشند، اگر همینطور فقط سیاد باشند، شکارچی باشند. استثمار کنن و مستعمر باشن فقرهای مادم بدم بیشتر میشه گذشت بکنی. از جامعه پزشکان هم درخواست بنده این است ما در داخل خواب درمانگاه نداریم به جایی که سروت مندان محترم دکترهای عزیز شما بازی کنید با سرمایه خودتان لطف کنید یک درمانگاه در داخل خواب بسید یک درمانگاه شما نروزی این است که گاهن از شما میشود و این درخواست هم درخواست برنظرانه است. از خدا بخواهیم که خدامه هر هرچه که ما مهربانی بر مهربانی ما هر هرچه که ما خوبیم بر خوبی ما بیاافزید و به فکر همدیگر هم باشیم واقعا عضاقخوام از اینکه وقت زیاد گذاشته و همین که نوبت جماعتی کمک برای مسلح هست و دوستان و عزیزان تعالی حمد کردند، تلاش کردند برای تعظیم شهر الله در این جامعه هم دستها را بالا میگیرند تلاش میکنند تا اینکه بر ترتیبین خدمه یعید امانا و آقایونی که در بحث مصلاف فعالند انشاءاللہ بتواند فعالیت خود را گسترده کنند اخلاص للهیت را خدا به همه ما عنایت کند ما همه برادر باشیم و برادر هم برادر برادر خواهد بود و دشمنی با اون نخواهد کرد ان شاء الله الله رب به همه ما و همه دوستان ما آنچه‌ای که به صلاح ماز مقدر بفرماید و ما را بران دارد که رضای او است سبحان ربک رب العزه عما یسفون و سلامٌ علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین بر رحمت یا ارحم